سوره تاها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است, با رحمت است. <تصفح> <تصفح> تاها ما قرآن را برای این نازل نکردیم که تو به زحمت بیفتی قرآن فقط برای آنها که از آقابتشان بیم ناکند کتابی که نازل شده از سوی خالق زمین و آسمان های بلند است بدان که خدای رحمان بر عرش مسلط است بر تمام مخلوقاتش فرمان روایی دارد آنچه در آسمان ها و زمین و میان آنهاست و حتی آنچه در زیر خاک هاست از آن اوست چه به صدای بلند سخن بگویی و چه مخفی کنی بدان که او بر اسرار نهان و حتی مخفی تر از آن آگاه است. الله لا اله الا هو له الاسماء الله است که هیچ خدای جز نیست و تمامی های نیک از آن اوست. آیا خبر سرگذشت موسا به تو رسیده است آن هنگام که آتشی دید و به خانبادهش گفت شما منتظر بمانید تا شعلی از آن آتشی که میبینم برایتان بیاورم و یا به واسطه نور آن راه به جایی برم هنگامی که به آتش رسید ندا آمد که ای موسا منم پروردگار تو که را درآورد زیرا تو در سرزمین مقدس توی هستی من تو را به پیامبری بگزیدم پس به آنچه بر تو می میشود گوش فراده اننی انا الله لا اله الا انا و اقیم الصلاة لذکری براستی من الله هستم و جز من هیچ خدایی نیست فقط مرا پرستش کن و به یاد من نماز به پایدار بدان که روز قیامت است اما من میخواهم زمان آن را مخفی نگاه دارم تا هر کس نسبت به دستاوردش جذاب بیند مراقب باش کسانی که به قیامت ایمان ندارند و از هوای نفسانی خود پیروی میکنند، تو را از آن روز عظیم قافل نکنند که هلاک خواهی شد ای موسا، در دست راستت چیست؟ گفت، این عصای من است. به آن تکیه می کنم و به واسطه آن برای گوسفندانم از شاخه درختان برگ می ریزم. البته برایم کاربردهای دیگر هم دارد. گفت، ای موسا، آن را بر زمین بیانداز موسا آن را بر زمین انداخت. ناگاه تبدیل به ماری شد که می خزی. گفت، حالا بگیرش و نترس، ما آن را به صورت اولش باز میگردانیم. دستت را در گریبان خود فرو بر تا بی هیچ عیبی، سفید و درخشنده بیرون آید. این هم یک معجزه دیگر. ما میخواهیم آیات و معجزات بزرگ خود را بر تو نمایان کنیم. به سوی فرعون حرکت کن که او از مرز حق توقیان کرده است. موسا گفت پروردگارا را سینه هم را گشاده کن ظرفیتم را بالا ببر و ماموریتم را سهل و آسان گردان و گره از زبانم بگشا تا واضح سخن بگویم تا بدیمسان پیامم را درک کنند یاوری از خاندانم برای من برگزین برادرم هارون برای این کار مناسب است پشتم را به او محکم گردان و او را در مأموریتی که به من داده این شریک گردان تا تو را بسیار تصویح کنیم و بسیار یادت نماییم می دانیم که تو به تمام امور ما بینایی خدا گفت ای موسا تمام خواستهایت اجابت شد ما یک بار دیگر تو را مشمول رحمت من قرار داده ایم آنگاه که به مادرت آنچرا لازم بود و کردیم گفتیم فرزندت را در اون صندوقی بگذار و آن را در دریا رها کن تا امواج دریا او را به ساحل برساند و دشمن من و او صندوق را بگیرد بدان موسی که من محبتی از خودم را بر تو افکندم تا محبوب آنها شوی و بدون آسیبی از تو نگهداری کنم و بدین سان در برابر دیدگانم پرورشیابی و آن هنگام که خواهرت برای اطلاع از وضع تو به نزدیکی کاخ فرعون رفت به آنها گفت میخواهید دایه ای را به شما نشان دهم که شیر دادن و نگهداری از این طفل را به خوبی عهدهدار دار شود و به اینسان تو را دوباره به مادرت بازگرداندیم تا چشمانش روشن شوند و غمگین نباشد یک بار دیگر نیز بر تو لطف کردیم آنگاه که کسی را کشتی و ما تو را از غم و اندوه نجات دادیم. سالیانی هم در میان مردم مدین زندگی کردی و ما تو را بارها آزمونش کردیم اکنون نیز در زمان مقدر به اینجا آمده ای موسی تا رسالتت دهی و بدان که اذهب انت واخوک ولا بدانکه تو را برای خودم ساختم حال تو و برادرت با معجزات من به سوی فرعون بروید و در یاد من کوتاهی نکنید بروید سوی فرعون که او از مرز حق طغیان کرده است با او به ملایمت سخن بگویید شاید پند بگیرد و خدا ترس شود موسی و هارون گفتند پروردگارا ما میترسیم که بر ما ستم روا دارد و یا بیش از پیش تقیان کند گفت ما ترسید. من با شمایم همه چیز را میبینم و میشنوم شما به سوی فرعون بروید و به او بگویید ما پیامبران پروردگارت هستیم قوم بنی اسرائیل را با ما رح کن و مورد آزارشان قرار مده ما معجزه ای از جانب پروردگارت آورده ایم. پس سلام بر کسی که تابع هدایت است. به او بگویید که به ما وحی شده است عذاب الهی شامل کسی است که حقیقت را انکار کند و از آن روی بگرداند. فرعون گفت: ای موسی، پروردگار شما کیست؟ موسا گفت: پروردگار ما کسی است که به هر مخلوقی آنچه را که نیاز داشت عطا کرد سپس در مسیر هستی رهنمونش شد گفت: پس آنها که پیش از این میزیستند چه گفت آگاهی از آنان در کتابی نزد خداست پروردگار من نگم راه می شود و نه چیزی را فراموش می کند او کسی است که زمین را برای شما محل آساریش قرار داد و راههایی در آن پدید آورد و از آسمان آبی فرستاد تا به وسیله آن انواع گیاهان را رویان دیم و پرورش دادیم از این نعمت ها بخوری و چار پایانتان را در این سبززار ها به چرا برید و بدانید که در همه اینها نشانههایی نشانه هایی برای خردمندان است ما شما را از زمین خلق کردیم و به زمین باز می‌گردانیم و بار دیگر زنده از آنجا بیرون خواهیم آورد حقیقتا ما به فرعون تمامی آیات و معجزات خود را نشان دادیم اما او انکار کرد و از حقیقت روی برگرداند گفت ای موسا آیا تو آمده ای تا ما را از سرزمینمان به وسیله جادویت بیرون کنی؟ حال ما نیز جادویی مثل جادوی تو می آبری. زمانی را برای وعده دیدار و مقابله معین کن زمانی که نه ما از آن تقلف کنیم و نه تو آن هم در یک مکان معین و با شرایط مساوی گفت وعده ما روز اید هنگام بالا آمدن خورشید همان زمانی که مردم جمعند فرعون رفت و تمام یاران حیلگر خود را جمع کرد و در موعد مقرر باز آمد رو به آنها کرد و گفت وای بر شما بر خداوند بزرگ دروغ نبندید که همه شما را به عذابی حلاک می کند. بدانید ناامید کسی است که دروغ و افتراب ببندد پس آنها به شور و مشورت پرداختند و رازهایی را به یکدیگر انتقال دادند به دیگر گفتند این دو بدون تردید جادوگرند و میخواهند به وسیله جادویشان شما را از ترزمینتان بیرون کنند و آین عالیتان را از بین ببرند پس تمام تدبیر و قدرت خود را به کار برید و در یک صف منسجم به مقابله آن دو برخیزید هر که امروز کارش برتر باشد پیروز است گفتند ای موسا اول تو جادویت را می یا ما بیرفت موسی موسا گفت شما بیندازید هنگامی که تنابها و اصاهایشان را انداختند بر اثر سهرشان چنان به نظر رسی که روی زمین حرکت میکنند. موسی موسا چون این سهم را دید ترس خفیفی در دلش راه یافت به او گفتیم نترس شک نداشته باش که تو برتری اکنون آنچه در دست راستتداری بینداز تا هرچرا را که ساختند ببلد زیرا کار آنها جادو و چشم بندی است بدان که جادوگر هر جا برود پیروز و رستگار نمی شود هنگامی که موسا این کار را کرد تمامی جادوگران به سجده افتادند و گفتند به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم فرعون گفت قبل از که من به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید قطعا او بزرگ و استاد شماست و او به شما جادوگری آموخته است بیشکت دست و را به جهت خلاف هم قط خواهم کرد و همه تان را بر تنهای نخل به دار خواهم آویخت تا بفهمید کدام یکی از ما مجازات شدیدتر و ماندگارتر است گفتند قسم به خدایی که ما را آفریده تو را بر دلایل روشنی که به ما رسیده است ترجیح نمی دهی. هر کاری که دلت می خواهد بکن زیرا اگر کاری به توانی بکنید در همین دنیا خواهد بود ما به پروردگارمان ایمان آورده ایم تا از خطاهایمان و جادوگری هایی که به اجبار تو مرتکب شده ایم درگذرد. زیرا خدا بهتر و مندگارتر است هر که در پیشگاه خداوند به عنوان مجرم حاضر شود بدون شک جهنمی نصیب او خواهد بود که در آن نمی میرد و نه می شود دائما بین مرگ و زندگی در نوسان است و هرکس با ایمان در محضر او حاضر شود در حالی که عمر کرد نیک داشته باشد بدون تردید دارای درجات و مقامی عالی است در بهشتهای ماندگاری که نرها در جاری است جاودان خواهند بود و این پاداش کسی است که خود را از هر پلیدی پاکیزه گردانه به موسا وحی کردیم که بندگان مرا شبانه از مصر خارج کن و برایشان راه خشکی را در دریا نمایان کن و از اینکه فرعونیان به شما دست یابند ترس به دل راه مده و هیچ بیمی نداشته باش فرعون با لشکریانش به تعقیب آنها پرداخت و آقبت موجهای سمگین دریا آنها را فرا گره بدانید که فرعون قوم خود را گمراه کرد نه داگت. ای بنی اسرائیل به راستی ما شما را از دست دشمنانتان نجات دادیم و با شما در طرف راست کوه تور وعده گذاشتیم و بر شما نعمت چون من و سلوا عطا کردیم از چیزهای پاکیزهی که روزیتان کردیم بخورید اما کفران نعمت نکنید که خشم من به شما خواهد رسید و کسی که دوچار خشم من شود سقوط خواهد کرد و لغفار لمن تاب و و صالحا ثم بدانید که من نسبت به کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل کرد خوبی داشته باشد و به راه آید بسیار آمور زندم ای موسا چه چیز باعث شد که از قوم خود در رسیدن به کوه تور جلو بیفتی موسی گفت این آنها هستند که پشت سر منند و من با تمام هوش و به سوی تو که پروردگارم هستی شتافتم تا خوشنود چدی ما قوم تو را پشت سر تو آزمایش کردی سامری با گو آنها را گمراه کرده است بیدرنگ موسی قشمگین و امدوناک به سوی قوم خود بازگشت و گفت ای قوم من مگر پروردگارتان وعده خوب به شما نداده است مگر مدت زمان جدایی من از شما بیش از حد شده است مگر میخواهید غضب و قشم خدا شما را فراگیرد که از وعده من تخلف کردید گفتند ما از روی اختیار از وعده تو تخلف نکردیم اما با وسوسه های سامری دیدیم بهتر است این زیورالات و تلاجاتی را که از فرعونیان همراه داریم در آتشی زوب کنیم و او از مواد آن پیکر ای ساخت که صدایی چون صدای گوساله داشت و گفتند این خدای شما و خدای است. بدان که سامری عهد خود را با خدا فراموش کرده بود آیا نمیدیدند که گوسالی زرین سامری هیچ پاسخی به سخنانشان نمیدهد و هیچ سود و زیانی برایشان ندارد؟ و حقیقتا هارون پیش از این به آنها گفته بود که ای قوم من شما به وسیله این گوساله مورد آزمایش الهی قرار گرفته اید بدانید که پروردگار شما خدای رحمان است اگر در پی راه نجات و آرامش هستید از من پیروی نمایید و دستور مرا اطاعت کنید ولی آنها گفتند تا زمانی که موسا به نزد ما برگردد ما همچنان به گوساله پرستی ادامه می دهیم موسا گفت ای هارون، چرا وقتی دیدی آنها گمراه شدند به دنبال من نیامدی؟ آیا تو هم از فرمان من سرپیچی کردی؟ ای پسر مادرم ریش و موی سرم را رها کن من ترسیدم وقتی میایی بگویی تو بین بنی اسرائیل تفرقه انداخته ای و به تو سیاه من اهمیتی نداده ای گفت و تو ای سامری این چه کاری بود که کردی سامری گفت من چیزی دیدم که آنها نمیدیدند من بسمتی از آثار رسول را گرفتم و در آن انداختم نفس من این کار را در نظرم آراسته ساخت موسی گفت برو که نصیب تو از دنیا همین باشد که فقط به دیگران بگویی با من تماس مگیر و نزدیک مشو یک تنهایی مفرد و زمانی معین برای عذاب الهی تو خواهد بود که هرگز از آن تخلف نتوانی کرد اگنون به خدای دست ساز خود که عبادتش میکردی بنگر. بنگر چگونه انرا می سوزانیم و ذراتش را به دریا میافکنیم؟ بدانید که خدای شما الله است، خدایی که هیچ معبودی جزو نیست خدایی که علم و آگاهیش همه چیز را در بر گرفته. ای پیامبر، ما اینچنین حکایتهای پیشین را برای تو بیان میکنیم و بیشک قرآن را از جانب خودمان به تو عطا کردیم. هرکس از قرآن روی بگرداند تا روز قیامت بار گناهی را به دوش خواهد کشید در حالی که جاودانه آن خواهد ماند بدانید که بد باری را در روز قیامت به دوش میکشند و روزی که در سور دمیده شود، مجرمان را در حالی که از شدت ضعف چشمانشان کبود گشته است گرد می آوریم. به آهستگی، به یکدیگر دیگر گویی گوی شما بیش از ده روز در برزخ نبوده اید. ما به آنچه می گویند آگاه داریم. به ویژه وقتی روشنگبین ترین آنها اظهار می دارد شما بیش از یک روز درنگ نکرده اید. از تو در باره کوها می پرسند. بگو خداوند آنها را متلاشی کرده و برباد می دهد سپس زمین را یک دست بایر و بیگیا رها می کند به طوری که در آن هیچ پستی و بلندی نخواهی دید آن روز که همه از دعوت کننده الهی پیروی کنند صدایشان از عظمت خدای رحمان خطه شده است و از کسی جز صدای پایی چیزی نخواهی شنید در آن روز شفاعت کسی مفید نخواهد بود مگر که خدای رحمان به او اجازه داده باشد و نظر و رعیش مورد رضایت خدا باشد خدا آنچرا پیش روی دارند و آنچرا که پشت سر گذاشتند می داند. اما هیچ کس به علم و آگاهی او احاطه ندارد همه چهره ها در آن روز در برابر خدای زنده و پایاننده خوازق و خواشه است و کسانی که با باری از ظلم و ستم آمده‌اند بی شک معیوس و زیانکارند و من من الصالحات وهو مؤمن فلا يقاف ذلبا ولا حقما اما اهل ایمانی که عمل کردی سراسر نیک و پسندیده دارد نه از ظلم و ستم می ترسد و نه از اینکه حقش پایمال شود و این چون این قرآنی را به زبان روشن بر تو نازل کردیم و در آن انواع هشدارها را بیان کردیم شاید آدمیان حرمت خداوند را نگاه دارند و یا پندی تازه بگیرند بدان. الله که فرمانروایی به حق است از هر چیز دیگری برتر است و نسبت به خواندن و نتیجه گیری از قرآن عجله مکن مگر آنکه وحی آن به تمامی بر تو ارزش شود و حقایق را آنگونه گونه که هست دریابی و همواره بگو پروردگارا علم و آگاهی مرا کن قبل از این ما با آدم نیز پیمان بستیم اما او فراموش کرد و ما او را فرد راسخی نیافتیم. در آن هنگام که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، همه سجده کردند مگر ابلیس که از فرمان سر زد. گفتیم ای آدم، این ابلیس دشمن تو و همسر توست. مراقب باش تا شما را از بهشت امن و راحتتان بیرون نکند، که به زحمت خواهی افتاد تو در این بهشتی که هستی هیچگاه نه گرسنگی خواهی دید و نه اریان و بی لباس خواهی شد در این بهشت نه تشنگی به سراغت میآید آید نه حرارت آفتاب آزارت میرساند. اما شیطان او را وسوسه کرد و گفت ای آدم آیا می خواهی تو را به درخت جاودانگی و فرمان روایی قدرتی که هیچگاه از بین نمی رود، راهنمایی نمایی کنم؟ به انسان، آدم و هوا از آن درخت خوردند و بیدرنگ پوشش بهشتیشان فرو ریخت و عورتشان نمایان شد آنگاه تلاش کردند تا از برگ های درختان بهشتی برای خود پوششی ترتیب دهند بدانید که آدم نافرمانی پروردگار را کرد و از بهشت او محروم شد سرانجام خداوند او را مورد توجه قرار داد و توبهش را پذیرفت و به راه درست و نجات بخش هدایتش کرد خدا گفت همگی از بهشت و این مقام و مرتبت پایین روید که دشمن یکدیگر خواهید بود اما هرگاه هدایت من به سراغتان آمد هر که از آن طبعیت کند بداند که در هیچ امری نگمراه می شود و به زحمت می افتد و هر که از یاد من روی بگرداند زندگی سخت و طاقت فرسایی نصیبش خواهد شد و در روز قیامت که همه جا مملوک و از است او را نابینا مشهور خواهیم کرد چون این شخصی گوید پروردگارا چرا مرا نابینا مشهور کردی؟ در حالی که در دنیا بینا بودم. خدا گوید همانطور که آیات و حقایق ما در دنیا به تو رسید و تو آنها را فراموش کردی و به هیچ انگاشتی امروز نیز تو فراموش می شمی. این اینچونین جزای کسی که اصراف کند و آیات پروردگارش را باور نکند خواهیم داد. بدانید که عذاب آخرت شدید مندگارتر است. آیا این همه انسان که قبل از اینان نابود کردیم و اکنون اینان در خانه های آنها راه می روند و زندگی می کنند عبرت و هدایتشان نمی شود راستی در این نکات نشانه برای خردمندان است. اگر قول محلتی که پروردگارت قبلا داده وجود نداشت هم اکنون و في ها مين دنیا مجازاتشون حتمی بود صابر على ما يقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطرافا بر بر حرفهایی که میزنند صبر داشته باش و پروردگارت را قبل از طلوع خورشید و قبل از غروبش به پاکی ستایش کن و نیز در ساعاتی از شب و ساعاتی از روز تسبیح خداوند را به جای آور تا خوشنود شوی و آرامش یابی اگر کسانی را از یک زندگی خوش و پرنعمت مند کردیم، تو چشم خود را با آن ندوست زیرا این چیزها شکوفه چند روزه دنیاست و ما به همین وسیله آنها را مورد آزمایش قرار می دهیم بدان که رزق و روزی پروردگارت بهتر و مندنیتر از هر چیز دیگر است خانواده خود را به اقامه نماز امر کن و خود بر انجام آن صبر و استقامت بورز بدان که ما هیچ روزی از تو نمیخواهیم زیرا خود ما روزی تو را می و بدان که عاقبت خیر از آن کسانیست که حرمت عوامر خدا را نگاه می دارند و گفتند چرا موجزه ای از سوی پروردگارش برای ما نمی آیا دلائل روشن سرگذشت اقوام گذشته که در کتب آسمانی پیشین آمده به آنها نرسیده است؟ اگر ما آنها را قبل از نزول قرآن نابود میکردیم، روز قیامت میگفتند پروردگارا، اگر پیامبری به سوی ما میفرستادی، از راهنمایی های تو تبعیت می میکردیم، و امروز اینچنین ذلیل و نمی شدیم بگو همه ما در انتظار به سر میبریم. شما نیز منتظر بمانید به زودی خواهید فهمید چه کسی در راه خداست و چه کسی هدایت یافته است قل کل متربص فتربص فست علمون من اصحاب الصراط السوی و من